ساکنین 919 چرتم به نزد علایالدین رفت و علت تصمیم او را در این مورد از او جویا شد علایالدین پاسخ داد چون شما به قدری کافی از این جواهرات نداشتید من این باید خودم این کار را به عهده می‌گرفتم حالا بفرمایید ببینید به نظر شما پنجره چگونه تکمیل شده است سلطان نزدیک پنجره رفت و از زیبایی و هماهنگی آن با بیست و سه پنجره دیگر بسیار خوشنود شد و گفت شما در یک لحظه سختترین در این کارها را انجام می دهید و من کسی را مانند شما ندیده ام آنگاه علا را در آغوش گرفت و بوسید وقتی سلطان به قصر خود مراجعت کرد نخست وزیر را در انتظار دید چه شگفتی و خود را از پنجرهی که به خوبی و استادی کامل اتمام یافته بود برای نخست وزیر بیان کرد نخست وزیر متقد بود که کارهایی را که علایدین انجام می دهد حتما از روی جادوگری است وگرنه نه می تواند با این سرعت کارهایی به این بزرگی انجام دهد سلطان گفت علایدین مرد توانا و دانایی است و تو از روی حسادت می گوی علایدین جادو می کند سلطان هر روز صبح از خواب بر می اول از همه از پنجره قصر خود قصر علایدین را تماشا می کرد و از زیبایی و شکوه آن لذت می برد علایدین هم بعضی روزها از قصر خود به شهر می رفت و در مسجدها و نماز مردم شرکت می کرد و چند بار هم نخست و زیر پایگان دربار را به خانه خود دعوت کرد هر بار که علایدین از خانه خارج می شد تن از غلامان خود را همراه می برد و در طول راه غلام سکه بین مردم پخش میکردند. همه اهالی شهر علایدین را می‌شناختند و از و جوانمردی او میکردند. وقت رفته شهرت او در شهر بیش از شهرت سلطان گردید. علایدین آنچنان بر مردم داری و محبت میکرد و به آنها یاری و کمک نشان میداد که همه اهالی شهر و اطراف علاقه بسیاری به او پیدا کردند و حتی در مرزهای کشور شورش های آغاز شده بود. که علایدین با سپاهی تمام شورش ها را به زودی فرو نشند به طوری که شگفتی سلطان شد علایدین پیروز مندانه به پایتخت بازگشت اما همواره با فروتنی و ادب رفتار میکرد و نام او در سراسر سر کشور شناخته شد سالهای متوالی او با خوبی خوشی زندگی میکرد و آوازه شهرت او همه رفته بود در هفته یکی بار هم به شکار در اطراف شهر می رفت. و روزگار را با خوشنودی میگذرانید تا اینکه جادوگر آفریقایی پس از سالها به فکر علایدین و چراغ جادو افتاد گرچه او تصور میکرد علایدین در همان جایگاه زیرزمینی به هلاكت رسیده اما برای اطمینانی بیشتر با دستگاه جادوگری خود به بررسی دقیقتری پرداخت و برخلاف انتظارش دستگاه نشان داد که علایدین زنده است و به مقام و ثروت فراوان رسیده و با دختر سلطان هم ازدواج کرده است. دیگر با آگاهی از این واقعیت، توفانی از خشم در دلش برپا شد و رنگ صورتش تغییر کرد و گفت: علایدین حتما از خاصیت این چراغ جادو آگاه شده است و او نباید از در جنگ سالها زحمت و پژوهش من بهره برداری کند. من باید یک خودم را به او برسانم و چراغ را از چنگ او بیرون آورم." روز بعد وسایل سفر آماده کرد و بدون آنکه در محلی رفع خستگی کند با سرعت به سوی کشور چین به حرکت درآمد. تا آنکه پس از مدتی دراز خود را به پایه تخت رساند و در کاروان سرایی منزل کرد روز بعد از ورود به خیابانهای شهر رفت و در علایدین از اهالی شهر به پرسش پرداخت بعد از مدتی به محلی رفت که مردم به نوشیدن نوشیدنی های مشغول بودند جادوگر در نخل به سخنان مردم گوش داد و شنید که درباره قصر جدید علایالدین ایدین تعریف می کنند جادوگر از یکی از آنها درباره قصر پستش هایی کرد آن شخص داد: مردم می شود تازه به این شهر آمدهی که از قصر علا ایدین بیخبری این قصر یکی از شکفتی های جهان است و همه اهالی مملکت از آن آگاهی دارند و در دنیا مانند ندارد. جادوگر از شخصی که با او صحبت میکرد راه قصر علایادین را پرسید آن شخص هم با خوشحالی زیاد راه را به جادوگر نشان داد و او هم خود را به قصر رساند وقتی به آنجا رسید و عظمت آن را دید فهمید که آن را جن چراغ جادو ساخته و موجب شهرت و ثروت علایادین شده است جادوگر از آنجا به همان کاروان سرای محل سکونت خود بازگشت و با علم جادوی خود پیبرد که علایدین چراغ چتری را در گوشه‌ای پنهان نگه داشته است آنگاه با خود گفت من با تدبیر خود چراغ را به دست می‌آورم و علایدین را دوباره به زندگی قبلی خودش برگردانم از وقت بعد علایدین در این هنگام به شکار رفته بود و سفر او هشت روز طول میکشید. دادوگر نزد کاروان سراد رفت و به او گفت من قصر را از بیرون تماشا کردم بسیار زیباست و خیلی میل دارم صاحبش را ببینم کارمون سردار گفت علا این صاحب قش هر روز به مردم اجازه می دهد به قصد او بروند ولی اینک سه روز است که به شکار رفته و تا پنج روز دیگر هم بنده می گردد یا دیگر خوشحال شد و گفت بهترین فرصت برای من است و نباید آن را از دست بدهم آنگاه بزرزار رفت و دوازده عدد چراغ نو از دکان چراغسازی خریداری کرد و در داخل کیسه گذاشت و بیرون آمد و چراخ را بسیار شفاف و تمیز کرد روزه بعد را برداشت و به کنار قصر علا آمد و فریاد کرد چراغ نو با چراغ کهنه عوض میکنیم. کنیم هر که به من بدهد من هم چراغ نو به او می‌دهم. به با فریاد و جدوگر مردم رخوزر و بچه های کوچه دور او جمع شدند و فکر کردن این آدم با یه و یا ابله باشد که چراغ نو را با چراغ کهنه تعویض کند دیگر اهمیت نمیداد که این همه جان دور او جمع شده و او را دیوانه و یا احمق تصور می‌کنند. او می‌خواست به هدف خود که همان چراغ جادو بود برسد اتفاقا شخصات خانم در تارار 24 پنجره نشسته بود که صدای جادوگر به گوش او رسید اما سر صدای مردم کوچه مانع شد که او بفهمد چراغ فروش چه میگوید. گوید خانم به یکی از کنیزان گفت درو بیرون دید این مرد چه میگوید گوید از قرش بیرون شد و بعد از مدتی در حالی که میخندید گفت چراغ فروش نو را با چراقهای کهنه عوض می کند و بچه ها و مردم دور او جمع شدند و او را مسقری می کند. در این موقع یکی از کنیزان گفت راستی من چراغ کهنهی در گوشه ای از این قرش دیدم فکر میکنم مالک آن هرکس باشد کاش خواهد شد اگر به جای آن چراغ تازه‌ای داشته باشد این چراغ در واقع همان چراغ جادو بود که علاءالدین به جز در موارد شکار همیشه هر کجا آن را با خود می‌برد و نه شاهزاده و نه کس دیگری در قصر از وجود آن چراغ و خاصیتش آگاهی نداشت علاءالدین آن را در گوشه‌ای دور از نظر دیگران جای داده بود ولی چون آن را در ننهاده و وقفتش نکرده بود مرتکب بی شده بود. جزادی که از خصوصیات چراغ کهنه موجود در قش اطلاعی نداشت، به دستور داد آن را به دورگردی که در کوچه فریاد می زند بدهد و در مقابل آن یک عدد چراغ نو به قصد یاورد. خااج باشی هم چراغ کهنه را به کوچه برد و به مرد دورگرد که همان دورگر افغایی بود تسلیم کرد و او هم آن را گرفت و یک عدد چراغ نو به داد. خااج هم، چراغ نورا به قصد برد دردگر به خوشحالی بسیار چراغ را گرفت و بدون معطلی به راه افتاد و قصر علا را ترک کرد و از خوشه های خلوت خود را به دروزه شهر رساند و حتی سراغ اسب خود هم که در کاروان بود نرفت همین که از شهر مقداری فاصله گرفت در گوشه از بیابان ایستاد و چراغ را از زیر پیراهنش درآورد و دستی روی آن کشید فورا جن چراغ جدو پدیدار شد و گفت چه امری داری تا انجام دهم ده جادوگر به او گفت قصر علایدین را با شاهزاده خانم و کلیه ندیمه های او و کسانی که در آن قصر حلطن به افریقا در محلی که خانه من قرار گرفته منتقل خان جن در یک چش به هم زدن همین کار را کرد و قصر علایدین را از کشور چین به کشور افریقا برد و در محلی که جادوگر خواسته بود جای داد حال به سراغ سلطان و شگفتی او از ناپدید شدن قصد برویم. سلطان مانند هر روز از خواب برخواست و از پنجره اتاق خود خواست قصد علا را تماشا کند که قصدی ندید. چشم خود را مالید و فکر اشتباه میبیند ولی بعد از دقت بسیار متوجه شد در آن مهر قصری وجود ندارد. افکاری گوناگونی به ذهنش گذشت. عاقبت سلطان نخستوزیر را اهضار کرد و او را نزدیک پنجره برد و به او گفت قصر علایدین را میبینی نخستوزیر پاسخ داد خیر سلطان با حیرت و تعثر فراوان گفت من برای از بین رفتن قصر علایدین ناراحت نیستم ناراحتی من به خاطر آن است که نمیدانم بر سر دخترم چه آمده و در حال حاضر در كجاست نخستوزیر پاسخ داد اگر به خاطر داشته باشند من از همان اول که دیدم این غاز در دیوکش به هم زدن ساخته شد فهمیدم که با استفاده از علم جادوگری بنا گردیده و علایالدین جادوگر زبردستی است من به شما عرض کردم ولی شما به هیچ حاش توجهی به سخن من نفرمودید سلطان از شدت خشم برفروخته بود و به فرماندهان سپاهیان خود دستور داد علایالدین را که به شکار رفته است در هر کجا او را یافتند سران دستگیرش کنند و با قول زنجیر او را به خضور آورند سرانجام علایدین را در راه دیدند که از شکارگاه برمیگردد. او را دستگیر ساختند و فرمانده گروه سپاهیان از علایدین مذاره خواست که به فرمان سلطان مجبور است او را با زنجیر ببندد علایدین گفت من فرمان سلطان را اطاعت میکنم ولی علت این تصمیم را نمیدانم زیرا من کمترین نافرمانی نکردم و مرتکب گناهی نشدم علایدین را به حضور سلطان آوردند نخست وزیر هم حضور داشت سلطان فورا دستور داد تا دوشخین سر از بکر علایدین دو سازد دوشخین سفره یه بزرگی را که مخصوص این کار بود بستد و روی سفره هنوز آثار خون محکومین به مرگ نمایان بود علایدین گرار سفره زانو زد و... و چشم او را به پارچه بستند درخمین شمشیر تیز خود را بلند کرده و بالای سر خود میگردانید و منتظر اشاره سلطان بود تا با یک ضربت سر او را بر روی اندازد در همین لحظه هیاهوی بسیاری از در ورودی قصر به گوش رسید که اهالی شهر به قصر خود می‌آمدند معلوم شد همان ای که علایالدین را معمورین سلطان دستگیر کردند و به بند کشندند م... مردان فهمیده بودند که به امر سلطان مأمورین علایادین را به قصر سلطان میبرند تا در آنجا او را گردن زنند مردم کشور که همه بر اثر ها و رسیدگیهای علایادین به آنها و همدردی و یاری به نیازمندان شیفته و فدایی او شده بودند میخواستند با نیروی خود قصر را روی سر سلطان خراب کنند و علایدین را آزاد کنند در این هنگام وزیر به سلطان گفت از شما درخواست میکنم که دست نگه دارید. و علایدین را از مرگ نجا دهید زیرا ملاحظه کنید مندم با انبوه جمعیت خود علیه شما به پا و چند قسمت از دیوار قصر را فرو ریخته و از طرف دیگر نیروی سوار نظام که در نخستین ورودی قصر آماده بودند عقب رنده و نگهبانان را هم سرکو کردند و اگر داخل شوند عواقب ناگواری سلطان و همه دربار را تهدید می کند وقتی سلطان اطراف خود را نگاه کرد متوجه شد که نیروی مردم او را از تخت سلطنت زیر خواهند آورد بسیار تشدید و به دوشقیم فرمان داد که فوراً علایدین را آزاد کند دوشقیم هم فوراً فرمان شاه را اجرا کرد و علایدین بدین دین وسیله یک بار دیگر از مرگ حتمی نجاد یافت وقتی مردم مشاهده کردند او بخشودگر گردید، خوشحال شدند و از هجوم به سوی سلطان و نخست وزیر و در هم کوبیدن دربار خودداری کردند و این خبر خوش به زودی بین شورش کنندگان منتشر گردید و خشمانها فرو نشست و به تدریج از اطراف قصر سلطنتی پراکنده شدند وقتی علایدین آزاد شد نزدیک سلطان آمد و با صدای بلند پرسید گناه من چه بوده است که شما چنین تصمیمی درباره من گرفتید سلطان پاسخ داد: چه گناهی؟ چه گناهی بالاتر از اینکه تو مرتکب شده ای؟ برای اینکه که متوجه ای گناهت شدی بیا اینجا تا به منظورم چیز؟ علایدین با راهنمایی سلطان به نزدیک پنجده ی قصر رفت و از آنجا به سوی قصر خود نگاه کرد ولی قصر در آنجا وجود نداشت و فقط زمین خالی بود در همین حال سلطان به او گفت تو باید بدونی که چه سر قصر تو آمده و این از قصر به کجا رفته است علایدین با حیرت تمام زمین خالی محل قصر را نگاه میکرد و نمیدانست چه اتفاقی افتاده و نمیتوانست كلمهای به سلطان پاسخ دهد فقط گفت این قصر را من بنا کردم و نمیدانم در نبودن من چه حادثه ای رخ داده است سلطان خطاب به علاهدین گفت برای من مهم نیست چه در سر قصر آمده برای من مهمان است که بدانم دخترم کجاست و در چه وضعی است من از تو می خواهم که دخترم را پیدا کنی. الین از سلکن تقضا کرد چهل چه روز به او مهلت دهند تا در دفتهوی شاهزده برود و در پایان مهلت چنانچه که نتوانست او را بیابد به حضور سلطان باز خواهد گشت تا هر مجازاتی را که صلاح دانستند در باره اش اجرا کنند. سلطان موافقت کرد و الیدین هم از حضور سلطان مرخص شد و با خود فکر می کرد قصر او را، به کجا برده اند و شنی روی توانست از چنین کاری انجام دهد به هر حال از شهر قادر شد و راه سفر در پیش گرفت شب نزدیک می شد و او از خود می پرسید به کدام کشور یا سرزمین باید بروم به کنار روزخانی بزرگ خروشانی رسید و گفت در کجای دنیا خواهم توانست شاهزاده را پیدا کنم و در سر موعد به حضور سلطان روم بعد با خود گفت اینکه امکان ندارد من او را پیدا کنم بهتران از خود را در انواد خروشان این رودخانه بیاندازم و راحت شدم سپس با خود گفت ولی من مؤمنم و نباید خودکشی کشی کنم در همین همگاه یادش آمد که جدوگر افریقایی از به او داده بود تا در زیر زمین برای جلوگیری از خطر از آن استفاده کند فورا از انگشتر را که در انگشت داشت محکم به تخت سنگی کنار رودخانه کشید. و ناگهان جن دروش تیکلی ظاهر شد علا از او درخواست که فوراً معلوم کند قصری را که علا بنا کرده در کجای دنیا است و یا آن که آن قصر را به جای اولیه خود برگرداند جن پاسخ داد انجام این کار از قدرت من خارج است فقط جنهای چراغ جادو می توانند این کار را انجام دهند من جن انگشتر هستم علایدین بعد از شنیدن سخنان جن به او گفت مرا فوران به محلی که قصد من سعلم در آنجاست ببر و مرا در زیر پنجره آن اتاق که بزر به دور در آن سکونت میکند به زمین بگذار علایدین سخنان او به پایه نرسیده بود که علایدین خود را زیر پنجره قصد خود در افریقا در روی چمنزاری احساس کرد از آن نقطه به پنجره قصد نگاه کرد همه چیز قصد به نظرش آشنا بود. جز منطقی جدیدی که در افریقا بود و او آنجا را نمی شناخت پاسی از شب گذشته بود علای شب را در پای درختی تا صبح گذراند و از شور و شادی حیجان زده شده و خواب از سرش رفته بود که صبح شد نگاهش را متوجه قصد زیبایی خود کرد و گفت به زودی قصد خود و همسر زیباییم هم را به دست خواهم آورد با این فید در آنجا قدم میزد. تا شاید بزر و دور پنجره تالار را باز کند و چشمش به علاقه بیفتد. در این حال متوجه شد که چراغ جادو را در جعبه و پنهان نکرده به وشیخار رفته آن وقت فهمید که بی احتیاطی بزرگی کرده و تصمیم گرفت از این پس یک لحظه آن را از جلوی چشم خود دور نسازد آن وقت یادی جادوگر افریقایی افتاد چون جنه انگوشتن از محلی در افریقا برده بود آن دو صبح شاستاد خانم روزتار از روزهای قبل بیدار شد جا افریقایی فیلن صاحب قش و فرمان رضای آن بود و روزی یک بار به قش می آمد و شاهزاده خانم هم کاملا به او دفتاری میکرد. یکی از منینه های خانم از پنجری قصر علا را در بیرون قصر دید و بسیار خوشحال شد و شتابان نظر بدل بدور آمد و به او مجد داد شخصاد خانم هم پنجره را باز کرد و صدای باز شدن پنجره علا را متوجه ساخت و دو آشق و یکدیگر را دیدند و غرق شادی شدند شخصاد خانم یکی از مدینه ها را پایین فرستاد و در پشت ساختمان را باز کردند و علایادین با شتاب خود را به تالار رساند و همسر خویش را در آغوش گرفت و پرسید چراق كهرهای که من در قصد داشتم چه شد بد البدور پاسخ داد همسر عزیزم من موجب شدم که این بدبختی برایمان پیش آید علایادین گفت خود را سرزنش نكن قفلت خودم سبب این پیشامد گردیده است حالا بگو ببینم داستان از چه قرار بوده است بزرگرد جریان چراغ فروش دورگرد و معاوضه چراغ جادو را با یک عدد چراغ نو و تمام مطلب را برای علایالدین تعریف کرد علایدین شهر داد که این چراغ فروش دورگرد دشمن اوست و به موقع در این باره توضیح خواهد داد سپس پرسید جادوگرد چراغ را در کجا پنهان کرده است؟ بزرگرد پاسخ داد او چراغ را همیشه در زیر پیراهن خود روی سینه اش جای می دهد اما نمی دانم چرا اینجا دوگر این همه با تو دشمنی دارد روز یک بار اینجا میآید و با من صحبت می کند و می مرا از فکر تو منصرف کند و می‌گوید سلطان، پدرم به خاطر ناپدید شدن من تو را گردن زده است و اصرار می که با او ازدواج کنم لوده تو دیگر زنده نیستی و پدرم را هم هرگز نخواهم دید و همینطور به من می گوید تمام و موقعیت تو توسط او فراهم آمده است ولی من میخواهش و پیشنهاد او پاسخی نمیدهم و هر دفع گریه و کرده ام و او هم ناخشنود از نزد من رفته است اما جادوگر امیدوار است که روزی با او موافق خواهم شد وگرنه بزر مرا وادار به قبول خواسته خود خواهد کرد علایدین گفت حال میروم و هنگام ظهر مراجعت میکنم ولی تعجب نکن اگر با لباس مبدل مرا ببینی فقط بگو آماده باشند که با یک ضربه به در پشت ساختمان در را به روی من بگشایند من به شهر می روم تا آنچه را برای نقشه مورد نظرم لازم دارم تهیه کنم این را گفت و از قصر خارج شد علایدین در طول راه به اطراف نگاه می کرد تا بالاخره مرد روستایی را دید که لباس های قهنه و پار پاری برتن دارد با شتاب خود را به او رساند و از او خواهش کرد که لباس خود را با لباس او عوض کند. مرد دهاتی با خوشنودی پیشنهادش را پذیرفت، و لباس خود را در محل خلوتی از تنده آورد و لباس علایدین را پوشید علایدین هم لباس مرد دهاتی را پوشید و به افتاد و خود را به شهر رساند و به بازار رفت و وارد دکان دار فروشی شد از دکان دار سم قوی بسیار کرد. دارو فروش سرواز علا را نگاهی کرد و گفت قیمت چنین سم نیم سکه یه تلاست یک سکه تلا به او داد و سم را در جیب خود گذاشت و از دکان بیرون آمد و یک راست به قصر آمد و در را کوبید و, و خورم در را گشودند و به تالار بزل و وارد شد. علا گفت همسر عزیزم برای از این بدبختی باید جادوگر که دشمن هر دوی ماست از برد برداشته شود و من این سم را آوردم که به او بخورانی تو باید امشب شب لباس ها بپوشی به و خود را آرایش خونی و وقتی جادوگر وارد می شود برخلاف هر شب روی خوش به او نشان دهی به نفی که احساس کند با پیشنهادش موافقت داری بعد هنگام شام ترتیبی دهی که این دارو در جام شراب جادوگر ریخته شود او به لحظ نوشیدن جامه شراب به زمین خواهد افتاد در این لحظه من از در پشت ساختمان به درون غرس میآیم و ترتیب همه چیز را میدهم بر دلب دور که میدید باید انتقام خود و همسرش را از چنین جادوگر بدنهادی گرفت حاضر شد نقشه علایادین را دقیقا اجرا کند و به علاعادین گفت به همین ترتیب رفتار خواهم کرد. علایادین هم از قرص خارج شد و تا هنگان شب در اطراف قصر پرسه میزد. زد هم به اتاق مخصوص پوشش و آرایش خود رفت و بهتری لبازهای خود را برتن کرد و ننیمه خواهیش او را آرایش کردند که البند زرین خود را که المست نشان بود بر کمر بست و درشت از مرقوبتنین مرواریت ها را که سی و چهار دانه بودند و فقط سی و چهار دانه هم آن وجود داشت برگردن بست و دستبنهای یاقوت و الماسش را در دست انداخت و گشواره های زبرجد آویز گوش کرد و خود را به زیباترین حالت در آورد و در انتظار جدوگر روی مبل نشست جدوگر مانند هر به طور معمول وارد شد و بزر برور به پیشوز او رفت و او را تعارف کرد تا در قسمت بالای اتاق بنشیند و خودش هم بعد از نشستن این جدوگر او نشد و تشمانش می درخشید. بعد بود به جای در گفت: امشب خوشحالم، زیرا پس از فکر زیاد متوجه شدم که دیگر رائائبی با غص خوردن من زنده نخواهد شد و به این نتیجه رسیدم که با تو زندگی کنم و فکر او را از سر خارج سازم و با پیشنهنددی تو موافقت کنم و برای امشب غذای خوشمزه‌ای هم تهیه کرده ام ولی متاسفانه شراب ندارم که به سلامتی آینده و خوشبختیمان بنوشیم. جردگر با شریگر سخنان شاهزاده بسیار خوشحال شد و گفت درخشش چشمان تو از درخشش الماس بیشتر است و من شراب هفت ساله ای دارم جهت جهت و رنگ بیمانند است جردگر فرم به دنبال شراب دست و بزر بدور هم خود را آماده اجرای نقشه علا کرد در این ناقض بزر بدور به چنیز زیبایی که شراب برای آنها می آورد سم را داد و گفت این بار وقتی به تو اشاره کردم این گرد را در یکی از جام‌ها ها خادی کن و آن جام را پس از لپیز کردم به دست من بده و آن جام دیگر را به جادوگر جادوگر از سرداب به قصر بکشی شراب را آورد و به دست کنیز زیباروی داد آنگاه جادوگر و بزار برور نقداری غذا خوردند و پس از مدتی جام شراب نفشیدند و بزار برور به کنیزک اشاره کرد از هم که پشتش به جادوگر بود گردی خوشنده را در جام ریخت و هر جام را از شراب لبیس کرد و آن را که سمی بود به بدر برور و دیگری را به دست جادوگر داد در این موقع بدر برور جام خود را به سوی جادوگر برد و به او گفت در زادگاه منچین دو دل دلداده دل دل جامهای شراب خود را با یکدیگر عوض میکنند و سپس به سلامتی یکدیگر نوشند جادوگر که از این سخن خوشنود شده بود گفت ما افریقایی ها از شما چینی ها در رفتار و گفتار عاشقانه عقبتر و باید ما بیا بیاموزید که چگونه میتوان بهتر عشق بازی کرد جادوگر به سخن ادامه داد و گفت شهر ساده کنم این وقت در نوشیدن شراب از جمع شده زندگی تازه ای را آغاز خواهم کرد بدون و دور که از پرگویی جادوگر بیخوشن شده بود گفت افنبنوش. بعد سخن بگو در این ورت شاهزادی جان خود را که سم در بود به جادوگر داد و جان جادوگر را از او گرفت یک یکباره تمام شراب را تا قصه آخر نوشید و در همین لحظه چشمانش بسته شد و بیجان از پشت بر زمین نقش بست در این هنگام علایدین وارد تالار شد شاهزاد خانم با خوشحالی خود را در آغوشش انداخت و او را بوسید علاویدین گفت مرا میبخشی این از دایه هر تر تو را به کشور خودت برگردانم و بوسیدن را به وقت دیگر مکول میکنیم همین که چهست خانم ورندیمه ها و خود باشی به اتاق دیگر رفتند علاویدین پیراهن جادوگر را گشود و شراق کوچکی جادو را از درون آن بیرون آورد و فورا روی آن دست مالید و جن چراغ آنان ظاهر شد علایدین گفت میخواهم این قشق و کلیه ساکنین آن را به کشور چین در جای قبلی خودش برگردانی. جن پاسخ داد اطاعت می و ناپدی شد و در یک چشم به هم زدن خود را در محل سابق در پای تخت چین یافت علایدین فارن به سراغ بزر و رفت و او را در آغوش گرفت و از شدف خوشحالی او را بوسه بارن کرد بعد هم قضایی خوردند، و با شراب جایدگر را هم نوشیدند و علایدین گفت ناراحتی و جدایی به پایان رسید و از دوباره دنبال یه زندگی خوش گذشته را ادامه خواهیم داد و سلطان با دیدن منو تو خوشموند خواهد شد آنگاه هر دو به خواب رفتند و استراحت کردند فتا یه انشب سلطن هر روز صبح از خواب بخواست و از پنجره به محل قصد نگاه کرد بعد از ناپدید شدن قصر داست هم صبح آنجا رو نگاه می کرد تا خاطر یه ایام پیشین را زنده کند و مقداری عشق بریزد این دار همین که نگاه کرد دید قصر علایدین به جای خود برگشته بازن نکرد دوباره چشم های و متوجه شد قصر سر جای خود است آنگاه از شدی فریاد کشید عصب خواست و سوار بر اسب به قصر علایدین رفت علاقه این که خود را آماده ای کرده بود به پیشواز سلطان شکرافت و او را به سرسره برد و از آنجا به تالار مخصص بدل ورور هدایت کرد سلطان به محض دیدن دخترش او را در آغوش کشید و اشک شادی از چشمان پدر و دختر سرازد شد سلطان به بدل ورور گفت می دانم از جابجا شدن نگهانی قصرت چقدر ناراحتی کشده ولی خدا را شکر می کنم که دوباره به دیدار یکدیگر نائل شدیم واقعا داور کردنی نبود که قصر به این بزرگی ناپدید شود و دوباره به جای خود با...